اگر نه بادغم دل یاد ما ببرد نهی به حادث بنیاد ما زجا ببرد اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر چگونه کشتی از این ورته بلا ببرد فغان که با همه کس قائبان باخ فلک که کس نبود که دستی از این دغا ببرد گذار بر ظلمات هست خضر راهی کو مباد کاتش محرومی آب ما ببرد دل زعیفم از آن می به طرف چمن که جانز مرگ به بیماری سبا ببرد طبیب اش منم بادده که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد به سوخت حافظ و کس حال او بیار نگفت مگر نسیم پیام خدای را ببرد